ما کی محرر نی و تنچ لالا رنگین کردے ہم رسم در راہ دین کردے ما کی محرر و تنچ لالا رنگین در راہ دین کردے از فرازی کو سارو از یانی در راہ حمله برزاغ و زغن چون باز و شاهین کرده ایم از فیرازی کوه سارو از میانی دره ها حمله برزاغ و زغن چون باز و شاهین کرده ایم. ما اگر بر باد دادیم خونه و منزین ولی دین اسلام را بلند تا ماهو پروین کرده ایم. ما اگر بر با دادیم و منزین ولی دین اسلام را بلند تا ماهو پروین کرده ایم. ما اگر کشتم و بستم و بدر آوختیم تبقی دست و فرامین کرده ایم. Ma ager kusztem u bastemu badob bedar Tibqi wegtem Tepki dastorati قrآن u fara min kerdeem Jahidul kufar farmani sarih est bera bad minan Jahidul kufar fermani, sarih hasbar, پس چرا ای مومن ان نقسی قوانین کردهم ملحدی کردن تجاوز در حرم پاک ما ما دفاع از خالص چون مردانی پیشین کرده ای ملحدی کردن تجاوز در حرم پاک ما ما دفاع از خاک چون مردانی پهشین کردیم ما چو خالیدم و این اسلام با ما باشد شینین جان شیرین را فیدایی نام شیرین کردیم ما چو خالیدم این اسلام به ما باشد شینین. Johnny <muchy> Shirin Lophido Nomi Shirin Kadem. Moki has temu, muri mu, no pisi hapti basha. Chuna islamu islamo oyin kardaye. Moki hastemu, mujrimu, naqisi hafti bashar چون افغان بر ارزشی اسلام و آین کرده هرکی در پایی بگانه سنیها دو تسلیم شد بر بر برهم چو افغان لن و نفرین کرده در کی در پایی بگانه دو تسلیم شد بار بار بر هم چو افغان لانو نفرین کار دایم ای خدا این دشمنانی خاک را کنسر نگون جمله بعد استی دعا اظهار آمین که دایم. ای خدا این دشمنانی خوک را کنسر نگون. جمله بعد استی دعا اظهار آمین که دایم. خامده خاموش باش لبا مکن حرف مزن گر حقای قرابی گویم جرمی سنگین کرد ایم گر حقای قرابی گویم جرمی سنگین کرد ایم